اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سجم بقية الله في الأرضين نتقرب الى الله بحبهم والبراءه من اعدائهم السلام عليك يا بقيه الله في ارضه وحجته على عباده السلام عليك يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجك الشريف برحمت الله وبركاته اوصيكم عباد الله ونفسي تقبل الله مؤمنين ميدونن هر عملي از جمله گناهان آثار بد خودش رو میگذارد همون جوری که وقتی گندمی رو میکارند سبز میشه گناهانم وقتی انجام میشه بازتاب و آثار خاص خودش رو داره ولی منافقین گناهکاران بیباک از آثار و بازتاب گناهان خود یا بیخبرند یا براشون اهمیتی نداره ولی مؤمن نسبت به باستاب گناهانش نگران هست گاهی انسان غیبتی می کند یا خبری رو پخش میکنه یا باعث اختلاف و ناراحتی دیگران میشه گاهی وقتا این حرکتها و صحبتها گاهی باعث مرگ ادعی میشه شما صفحات حوادث روزنامه ها رو که ملاحظه میکنید بخشی از این حوادث در پی چنین گناه ها که انجام شده قرآن در باب بازتاب این گناهان می انا نحنو نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و كل این احسیناه و فی امام مبین بدون شک مردگان را ما زنده میکنیم و آنچه پیش فرستادن و تمام آثار اونها رو می و همه چیز رو در کتاب آشکار کنندهی بر شمرده این حوز قیامت گاهی وقتا به غیبت کنندهای میگن تو به خاطر فلان حرفی که زدی در فلان قتل شریک هستی و این به ما هشدار میده بر اینکه مراقب باشیم تقوای الهی رو رعایت کنیم در حفظ زدن آمون در ارتباطاتمون در قلم ها که می نویسند، موجب فتنه و فساد و گناه نشیم در بحث تفسیر عرض کردیم در پنجمین آیه از سوره مبارکه ممتحنه حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا عرض می کند ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر و ما را فتنه برای کسانی که کافر شدن قرار مده بحث این بود که منظور از این فتنه در این کلام حضرت ابراهیم چیست <تصفيق> چون کلمه فتنه در قرآن کریم در موارد گوناگونی به کار رفته در خطبه قبل به سه مورد از موارد کلمه فتنه در قرآن کریم اشاره کردیم اکنون چند مورد دیگر رو تقدیم میکنم چهارمین مورد کاربرد کلمیه فشته در قرآن کریم درباره مصیبت و بلا و گرفتاری است واقعیت آن است که برخی از مردم خدا رو یک سویه و برای دستیابی به اهداف مادی عبادت میکنند و می علامت علامتش اینه اگر چنان چه بلایی مثل بیماری، تهیدستی، محرومیت به اونها برسه از پرستش خدا عقب گرد میکنن این متن قرآن کریم قرآن میفرما جو من الناس من یعبد الله الا حرف بعضیا خدا رو یک سوی عبادت میکنن و ان اسابه خیر اطمینان اگر خیر بهشون برسه خب پیالشون راحته و ان اسابت و فتنه ان غلب علو جهه اگر بهش فتنه و مصیبت و بلا و گرفتاری برسه هستند از دین برمیگرده عقبگرد میکنه پنجمین معنا برای فتنه در قرآن کریم که برخی از بزرگان ذکر کردن به معنای شک و شبه و اضطراب در دین هست و فرمودن این آیه کریمه و اشد من القتل به همین معناست یعنی در این آیه اراده فرموده بر حسب این تفسیر که فتنه اون است که سبب شبه و شک و ازتراب در عقیده و دین بشه در نتیجه چنین انسانی که شک در دین داشته باشه به خاطر این شبه ها ازتراب در عقیده پیدا کند دیگه نمی دین حق چیه دیگه نمی اعتقاد صحیح کدامه قرآن میگه بر اساس این تفسیر این رقم فتنه از آدم کشی بدتره چرا؟ چون اگر فرزند یک مؤمنی را به ناحق بکشند اون مؤمن عاقبت به خیر شده با شهاده به بهشت میره زرر نمیکنه فقط فرصت یک چند روز زندگی دنیا رو قاتل از این مقتول گرفته ولی وقتی در دین مؤمن شبه کنن او را به ازتراب بیندازن او رو دوچار فتنه کنن زمینه های شک که در اعتقاد براش فراهم بیاد از خودش می آیا این دین حقه در نتیجه چنین آدمی ایمانش ایمانشو از دست داده با این حال اگه از دنیا بره چنین آدمی اهل نجات نیست و واضحه که این رقم اضطراب ایجاد کردن از کشتن بدتر هست شش کاربرد کلمه فتنه در قرآن به شر و فساد هم آمده است قرآن کریم درباره منافقین می‌فرماید: اگر منافقین برای دفاع و جنگ با دشمنان بیرون بیان جز شر و فساد و فتنه به شما چیزی نمی افضاین اینا میان که جاسوسی کنن برای دشمن سوره مبارکه توبه آیه چهل و هفتم فتنه به معنای فریب و گول خوردن هم آمده در قرآن کریم در قرآن فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم نکم الشیطان ما اخراج ا من الجنه فرزندان آدم مراقب باشید که شیطان شما رو فریب نده اونجوری که پدر و مادر شما رو با فریبکاری از بهشت بیرون کرد هشتمین معنایی که برای فتنه در قرآن به کار رفته معنای شکنجه و آزار هست در قرآن می‌فرمایند که الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بلهم عذاب الحريق این آیه درباره ستمگرانی وارد شده که ادی مؤمن بیگناه رو مورد آزار و شکنجه قرار میدادن شبیه آنچه که این روزها در میانمار شاهد کشدار و تعدی به نوامیس مردم و آتش زدن مزاره و خانه های مسلمانان میانبار هستید در بهرین و سایر مناطق مسلمان نشین ستمگران این ظلم ها رو و فتنه ها رو در حق مسلمان ها روا میدارن قرآن میفرماید کسانی که مردان و زنان با ایمان رو شکنجه دادن سپس توبه نکردن برای اونها عذاب دوزخ و عذاب آتش جهنم هست اینها نمونه هایی بود از استعمالات و کلمه فتنه که در قرآن به کار رفته ان شاء الله در خطبه های بعد ان شاء الله را مسلمانان و کشورهای اسلامی را از خطر منافقین و فتنه‌گران حفظ بفرما شر کفار و منافقین را به خودشان بازگردان المبصرة لازم رو برا شناخت دشمنان و قدرت و توان لازم رو برا مقابله با آنان به ملت مسلمان عنایت بفرما ما رو در مسیر مستقیم اهل بیت ثابت قدم بدار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا احد صدق الله العلی العظیم حمّد عجل فرجه اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على مولانا وعلي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أجمعين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفل بن محمد الصادق أبو سب جعفر الكاظم وعلي بن مسرب المرتضى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي سلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا یا فاقمتو المعصومه و رحمت الله و برکاتو اوسیکم عباد الله و نفسی به تقوه الله در این خطب خود, خود و شما رو به رعایت تقوه الهی دعوت میکنم انسان به برکت تغوا بسیاری از نارسائی ها و ناتوانی های خودش رو جبران میکنه به برکت تقوا انسان به امتیازهای غیر قابل تصوری دست پیدا میکنه یه وقتی امام باقر علیه السلام یه نامه‌ای برای یکی از اصحاب و دوستان و محبینشون نوشتند در اون نامه ضمن امر به تقوا فرمودن ان الله عزوجل یقی بالتقوا ان العبد ماعذ به انه اقلو خداونده خدابنده عزوجل به برکت تقوا انسان رو از اون که عقلش به اون نمیرسه حفظ میکنه اگه انسان تقوی داشته باشه جاهایی که دیگه عقلش راه نمیده خدا راه رو به اون نشان میده و یا جلی به تقویان اماه و جهلوه کردلی و نادانی رو خدا به برکت تقوا بر طرف میسازد کتاب شریف کافی جلد هش صفحه 52 و دو حدیث شانزده در این خطبه چند مطلب رو تقدیم میکنم مطلب اول شروع سال تحصیلی امسال با محرم همزمان شد و جویندگان علم با صدای زنگ به نام ابا عبدالله علیه السلام در محل درس حاضر شدند تا هم معلمان و اساتید حسینی درس بدهند هم محسلین حسینی درس بخوانند و هم مدارس محل پرورش و تربیت انسانهایی باشد که آشورایی فکر کنند آشورایی در عرصه های مختلف دفاع و فرهنگ و علم و رشد علمی در تراز کربلای حسینی قدم بردارد در شهر مقدس قم هم دانش آموزان عزیز رو آموزش و پرورش در حرم محتهر است. و از سورا ها در روزی که به نام حضرت قاسم سلامون علیه مزین بود آوردن و زن عزاداری برای نوجوان هانگان بنی هاشم درس های از مکتب اسلام رو به اونها یاد و متبرک شدن با نام اهل بیت تشکر می کنیم مطلب دوم این روزها کشور عزیزمون در پرتو هماسی کربلا حسینی از یکی از مدافعان حرم اهل بیت علیه و تجلیل شایسته ای به عمل آوردن رهبر حکیم و عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی الله این شهید رو حجت خداوند در برابر چشم همگان دانستند که پس از عمر کوتاه خود شایسته دریافت شهادت این عطیه الهی شد و لبهای مبارکشون رو به تابوت این شهید قرار دادن ایشان این شهید سعید رو یکی از نمونه های رویش انقلاب دونستند بدون شک این شهید جوانان عزیز ما خواهد بود همچون شهید فهمیده شهید بالازاده و صدها شهید جوان دیگر نام و یاد و راه این شهیدان هرگز از خاطرهها و سینه ها نخواهد شد حتی اگر کسانی بخواهن برای خوشامد دشمنان انقلاب نام این شهیدان را از کتاب درسی حذف کنن این شهیدان در قلب این ملت قهرمان برای همیشه ثابت خواهد ماند مطلب سوم همزمان با شروع درهم پیچیده شدن تومار سیاه داعش در کردستان اراق ای سازمان یافته و سابق دار در حال اجراست همه پرسی برای جدا شدن این بخش از خاک کشور عراق با حمایت آشکاره رژیم فاسد و غاسب سهیونستی و حمایت پشت فرده امریکا و بعضی از مزدوران دیگر که در آینده بیشتر نمایان خواهد شد اینا خبر از نقشه شوم دیگری علیه جهان اسلام میده اونها میخوان در دل یک منطقه اسلامی یک اسرائیل دیگری رو به نام اقوامی به وجود بیارن تا بی ثباتی و ناامنی دیگری رو به حمیل بیش از هر زمان دیگر باید دو نکته اساسی رو مد نظر داشت یک کردان غیور و مسلمان نباید اجازه بدن که اسرائیل اسرائیل غاسب و جنایتکار با نام آنها چنین فساد و توتعی رو سامان بده دو همه کشورهای مسلمان به خصوص کشورهای همسایه با عراق باید با قدرت و قاطعیت در برابر این نقشه شوم بیستند چون اگر این فتنه در بگیرد و آتشش برافروخته بشه دامن همه رو خواهد گرفت درباره هفته دفاع مقدس و هفته امر به معروف و نحیز کرد در ضمن مطلب چهارم مطالبی تقدیم شما خواهد شد مطلب چهارم درباره حماسه کربلای حسینی است همان ای که امروز بیش از هر روز دیگر نیازمند به بازخانی اون هستیم تا خط زندگی و حرکت خود رو بر اساس اون تنظیم کنیم در واقعی کربلا هر کاری که حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادن برای اون بود که مندگار بشه برای اون بود که الگو بشه برای همه رحفویان به خاطر همینه که میگیم واقعه کربلا یک قطعه تاریخی نیست دیگران بخوان اون رو مطالعه کنن بلکه حادثه کربلا ترسیم یک راه هست ترسیم یک و مهندسی یک جاده هست فراروی همه این انسانها برای اینکه که ازت زندگی کنند ولله همه مالک المولک تقتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعذب من تشا و تذلل من تشا بیادیکل خیر این نکاله کل شیع غدير دختر همین بود که حتی گاندی غیر مسلمان برای عزت و اقتدار ملت هند از آشورای امام حسین علیه السلام درس قیام و مقاومت در برابر امپراتوری بریتانیا گرفت و پیروز شد داستان کربلای عبا عبدالله علیه السلام درسی که داد این بود مردم هرگاه دیدید یک غویت یزیدی تشکیل شده هر کجا که دیدید جبهه یزیدی تشکیل شده به سرعت و با قاطعیت شما پشت سر رهبرتان هویت و جبهه حسینی را تشکیل بدید دیگر از این دیام ماندگار کربلای عبا عبدالله السلام شما اگر ملاحظه فرمودید امام با همان گروه اندک تا آخر اصداد و هرگز تسلیم نشد برای عینیت بخشیدن به این آیه قرآن بود کم منفعتن غلیرتن غلبت فعتن کسیرتن الله و غلبه رو هم امام حسین غلبه راه و مکتب و هدف دانست نه غلبه جسمی که به هر حال با مرگ طبیعی پایان میپذیرد نکته بعد اگر امام از ابتدای حرکت تا آخر قیام حتی با سر بریده بر سر نیزه و در دیر راهب مسیحی و در بزم یزید فاسد قرآن تلاوت می کند. برای آن بود که به ما پیغام بدهد مردم از قران جدا نشید قرآن باید در سراسر زندگی شما حضور کارساز و راهگشا داشته باشه مردم شما باید با قرآن زندگی کنید همچون شهیدان راه خدا قرآنی زندگی کنید قرآنی بمیرید ولا تموتن الا و انتون مسلمون ما در هفته دفاع مقدس از دلیل مردانی یاد میکنیم که با الهام از آشورای حسینی با رهبری فقیه زمان و ولی فقیه برای رضای خدا تا جان مقاومت کردند و افتخار آفریدند و امروز بعد از گذشت این همه سال ملاحظه میکنید رهبر عزیز انقلاب در پیام خودشون برای غبارروبی از مقبره شهیدان متوازعانه از مجاهدت ها و رشادت های این شهیدان عزیز یاد میکنند مطلب دیگر اگر در روز آشورا هنگام حجوم حرامیان به حرم جسم مجروح و خسته خود را ابا عبدالله علیه السلام بالا میکشد به آن حرمت شکنان متجاوز بگوید یا شیعه علوی سفیان الا یکن لکم دینا ولا تخافون تخافون المعاد فكونوا احرارا فی دنیاکم امام میخواست برای عبد درس آزادگی درس غیرت به مردم بدهد به اونها بیاموزد نگذارید نوامیس شما تحت حجوم بیگانگان قرار بگیرد امر به معروف از منکر رو فراموش نکنید مطلب دیگر و مطلب پایانی امام در واقعی کربلا درس تحمل مصیبت را نیز به همه داد از جمله در مسیبت جانسوز جوانش حضرت علی اکبر علیه السلام علاقه امام و علی اکبر علاوه بران علاقه پدری و فرزندی گوشه ای از عشق سوزان امام حسین به جدش رسول خداست که شمه از این عشق رو شما میتونید در این جملات امام حسین علیه السلام ملاحظه کنید تنگامی که علی از میدان گرفت امام با انگشت سبابه به آسمان اشاره کرد به خدا عرض کرد اللهم مشهد الاها اول القوم فغد برز اليهم غلام من دش و ناس خلدان و خلغان و منطقان به رسولک و کن نو از اشتق وجه رسولک نظر نو وجه خدا یا هر وقت دلمون برا پیغمبر تنگ میشد به صورت علی نگاه میکردیم امام از علی اکبر خواسته بودن ابتدا به خیمه بانوان محرم حرم برن با اماها خداحافظی کنن ودا علی اکبر با اماها طولانی شد ظاهرا اونها از علی خواسته بودن علی جان مقداری مقابل ما راه برو امام وارد خیمه شدن فرمودند دعینه او رو با بزنید این مرد جبه هست باید به افتخار بیا فرینه علی اکبر آزم میدان شد اما مگر حسین چشم از علی بر میدارد حاسن عمرش علی اشبه ناس به رسول الله هست الان میاد میان گورگهایی هایی که سالها بغض امیر المؤمنی رو در دل نگه داشته بودن که امروز در کربلا سر علی اکبر خالی کنند. و در مقتل دارد وقتی علی به میدان میرفت فنظر علیه نظر آی سنمن حضرت عبا عبدالله نگاه معیوسانه به علی اکبر داشت مدتی طول نکشید صدای علی از میدان آمد امام به میدان رفت از همونجا فریاد زد یب نسد و الله رحمت خدا نست تو قد کنه نست من از طریق علی اکبر قد کردی ابو عبدالله خود را به زحمت کنار علی رساند فعتاه الحسین علیه السلام و نکب علی خودش رو روی بدن علی انداخت وازعن خده و علا خده صورت به صورت علی گذاش و او یقول علا الدنیا بعد کلعفا لشگر یزید دارن این منظره رو میبینن میدانید مصیبت زده رو مصیبت دیده بهتر تسکین میده اینجا عقیله بنی آشم زیدن کبرا به کمک آقا با عبدالله اومد باناله خودش رو به حسین رسانید داغ علی خیلی آقا ابو عبدالله رو اذیت کرد آقا میخواستند بلند تمام در بدن حضرت ابو عبدالله دیگه نمانده به زبان حال رو کرد به فرزندش علی علی جان خیز از جا آبرویم را بخر خیز از جا آبرویم را بخر چه کنم بابا نمرات اللهم لعن ظلم حق محمد محمد على ذلك اللهم لعنهم جميعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برای فرج آقا امام زمان السلام هوائج رهبر عزيز انقلاب و هوائج خودتون و ملتمسین دع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعى ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعى ويكشف السوء المضطر اضا بمحمد و اهل بيتي عليه والسلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا, يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حربدگاران ما و نسل جوان ما را از حسین و مكتب حسين جدا مگردان دشمنان اسلام در رأس آنها آمریکا، انگلیس اسرائیل منافقین و حابیون ها به حق محمد آل رسوا و نابود بگردان به فرج امام زمان فرجی به مظلومان آلم مرحمت بفرما روح متحر امام ارواح متحر شهیدان براجع مازین امام جمعه فقیدمون حضرت آیت الله مشکینی و همه ی رفتگان از اهل ایمان با از محشور بفرما جانبازان عزیز مریضان اسلام شفا و سب مرحمت بفرما رحبران معظم انقلاب و سوران و خدمتگزاران نظام بر توفیقاتشون بی افزای باران رحمت رب العالمین نازل ما رو شد، گذار نعمتات قرار بده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظيم السلام علیکم و الله و